درس 6 خدمت تون است کردیم که اصل در فاعل یعنی اونچه که شایستگی باید به فاعل داد مقدم شدنش بعد مفعول بعد گفتیم که در چند جا هست که این اصل واجب میشه. ای شایستگی قابل تغییر نیست واجب میشه یکیش جایی گفتیم که لبس پیش بیاد مثل مواردی مانند زرب و موساییسی جایی که فائل زمیر متصل بشه و مفقون هم متاخل از فائل میشه مثل زربت تو زیدن که در اینجا اگر ما بخوایم فائل رو معخره و مفکول کنیم مجبوریم زمیر منفصل بیاریم و تا جایی که میشه زمیر متصل آورد منفصل آوردن غلط هست پس بنابراین واجده بعد گفتیم جاهایی هم هست که مراعات این اصل غلط هست مراعات این شایستگی ممتنه یعنی شما نمیتونید فاعلتون رو مقدم کنید گفتیم کجا گفت جایی که مثلا به فاعل زمیری چسبیده باشه که به مفعولم به میگرده مثل ازا ابنا ابراهیمه ربهو که اگر ربهو مقدمه بر ابراهیم بشه اوض ضمیر اصطلاح اینه عود ضمیر به مرجع متأخر لفظاً و رتبتاً می شود اگر ربهو مقدمه بر ابراهیم شد او زمیر به مرجع متاخر لفظاً و رتبتاً می شود و این جایز است. او زمیر به مرجع متاخر لفظاً و رتبتاً جایز ایست این موردی بود که خوندیم ظاهراً مورد بعدیش او اتسلا سلام او اتسلا زمیر المفعوله برفه زمیر مفعولی به فعل چسبیده باشه و هو غیر متصله این ووا با حالیته هوا هم میخوره به فائل و حالا که فائل زمیر متصلی نیست چون اگر فاعل ضمیر متصلی باشه مفعول هم ضمیر متصلی باشه اینجا باز فاعل واجبه مقدم بشه مثل ضرب تو کرد اگر فاعل ضمیر متصلی است مفعول هم ضمیر متصلی است واجبه که فاعل مقدم بشه ضرب تو کرد ماشخصه اگر مفعول زمیر متصلی بود مثل زربکر مفعول زمیر متصلی زربکر کاف اومده چسبیده به زرب فائل هم زمیر متصلی نیست اسم ظاهره منفصله اینجا مفعول واجبه که مقدم بشه بگیم ضرب دون، زیدن ضرب اک واجب است که مفعول مقدم بشه و ما بگیم زربک چرا به دلیل اینکه اگر خواستیم فایل رو مقدم کنیم و مفغول و ماخر این جمله رو باید چجوری بگیم؟ زره و زیدن ایا که همون اشکال بیش میاد که چی؟ تا جایی که میشه زمین رو متصلی آورد منفصل آوردن غلط هست آه منفصل آوردن شما دیدید عبارت رو میگفتید هازا کتاب عوامل ملا محسن رحمه الله رحمه الله رحمه الله حالا چرا هو بر الله مقدم شده مفعول بر فائل؟ میگیم به دلیل اینکه مفعول ضمیر متصل است و فائل متصل به فرم نیست اسم ظاهره و اینجا باید مفعول مقدم بشه و متصل تا زمیر متصلی بیاد چون اگه متاخر بشه زمیر منفصلی میاد و صحیح نیست در رحمه هملاه هملاه هم رحمه اولی کتاب ما هم این رو گفتم و ما وقع عنهما حالا یه قانون کلی میده میگه اگر استثناء مفرق داشتیم استثناء مفرق یعنی چی استثنایی که مستثنا منهش حذف شده و مستثنا اعراب مستثنا منه رو میگیره حالا یا فائل یا مفرق. مشخصه و در کلام منفی هم استثنائی مفرق واقع اگر استثنائی مفرق داشتید هر کدوم از فائل یا مفعول بعد از الا واقع شد از الا واقع شد واجب است که محخر بشه واجبه که چیه؟ محخر بشه مقدم شدنش درست؟ نیست چون الا جاش یکی با آخر مونده است اون آخری مستثناست الا جاش یکی قبل از اوه یعنی قبل از مستثنا یکی با آخر جای دیگه امکان مقدم شدنش نیست اون مستثنا واقع میشه هرچی از اینها بعد از الله بیاد باید محخر چرا؟ چون الله جاش یکی با آخره هرچی که بیاد بعد از الله حتما جاش میشه چی؟ آخر بی خودش یکی با آخره اون میشه چی؟ آخر مثال ما ما زرب تو ما زرب تو الا محمدن ما زرب تو الا محمدن الان ما مای نافیه زرب تو فعل و فاعل الا استثناء محمدن مفعوله زرب تو و امکان مقدم شدنش بگید چرا چون بعد است ایلو. ایلو. حالا اگر گفتیم ما زرب محمدن ما زرب محمدن الا انه ما زرب محمدن الا انه همون جمله است فائل رفت بعد است؟ الا واقع شد واجبه که فعال ما نمی باشه هم دیگه زمیره چی بیاریمش متصلی بیاریم مجبور شدیم چی بگیم هنه بگیم و زمیره مونفصلی ما به محمدن الا هنه معنا فعق میکنه ها. معنای دو تا عبارت چیه اولیش معنایش چیه مازراب تر الله محمدم. یعنی من نزدم کسی رو مگر محمدو. یعنی من فقط محمدو زدم. حالا احتمال داره کس دیگه ام محمدو زده باشه یا نه؟ احتمالی کس دیگه ام زدت نفر دیگه هم زدم. من میگم من نزدم مگر محمدو. احتمالی دیگه نفر دیگه ام محمدو زدم. درست؟ در مثال دو چی؟ میگم نزدم محمد را نزده است محمد را مگر من یعنی چی یعنی من محمد رو کتک زدم کسی غیر از من نزده حالا احتمال داره من غیر محمد رو هم کسی رو زده باشم یا نه ببینید در اولی حصر در مفعول واقع شده آه؟ در دومی حصر در فایل واقع شده هرچی رو که ما قصد حسرش رو داشته باشیم بیبریم بیذاریمش بعد از الا و الا جاش یکی مونده را خیر کلامه حالا هرچی رو که ما قصد حسرش رو کنیم باید بذاریمش آخر کلام فایل باشد یا مفهور نظام میگه و ما امن من ما. و آنچه که واقع شود از این دو کنوم دو فایل و مفعول آنچه واقع شود از این دو بعد از اللا بعد از اللای استثنائی او معناها یا معنای اللا خب بعضی کلمات هستن معناشون معنای اللاست مثل غیر همینجا میتونیم بگیم چی؟ کلمه غیر رو بیاریم همینجا میتونیم کلمه بگید سه رو بیاریم ها؟ معنای اللا رو دارن مشخصه؟ معنیشو معنای الاس فرقی نمی کنم اه یا آنچه که در معنای الاس یعنی از عداد استثناء از عدوات استثناء مثل غیر و سوا وجب تاخیر و واجب است که آخر واجب است که راه چاری دراش نیست چون اگه مقدمش کنید کلام پده. تمام شد بخص فائل تمام از ثانی دومین مرفو فائله. نائب الفائله نائب فائل نائب فائل یعنی چی؟ یعنی فائل در کلام نیست این نیابت از فائل میکنه نیابت از فائل میکنه یعنی چی؟ یعنی مصندانه لنه میشه مثل فائل و مرفوع میشه مثل فایل و اما وکن بکنه... مشخص اینوش نایب فایل اصلش چی بوده؟ مفعول بوده نایب الفایل و هو المفعول نایب فایل عبارت هست از مفعولی که القائم و مقامل هو مفعولی که قائم مقام فایل است. یعنی جانشینه حوال مفعول و القائم و مقامه میگه فعل معلوم فاعل برمیداره فعل مجهول نائب فاعل برمیداره میگه خیال نکنید که ما فاعل که نداریم مفعول رو میاریم میذاریم سر همون فعل نه سر همون فعل بذاریم غلطه چرا اگه قرار باشیم مثلا بگیم ذره و زیدون امرن بعد زیده حصف کنیم بکیم ذرا و هم رو. خب معلوم نمیشه که این مفعول بوده و شده چی؟ نایب فایل همی خیال میکنن چیه؟ خود فایل پس باید فعل هم یه تغییراتی درش داده شه. یعنی فعل از حالت معلومی به حالت مشغولی درده نظامی که وسیقت و فعله وسیقت و شکل فعل این نایب فایل فعله در مازیست او یفعلو در مزاره آه. خب این به خاطر سمبولیک گفته شده دیگه سولازی مجرد و فعیلو گفته و یفعلو تا اینکه بقیه رو شما برش نیاز خب معلوم همیشه فعیلو یفعلو نیست گاهی اوقات مثلا اکرمه است میشه چی؟ اکرمه یعنی میخواد بگی که سیغه فعل او در مازی سیغه مچهول و در مزاره هم سیغه مجبور همون سیغه معلوم به کار و سیغت و فینهی فعله, فعله و یفقن بریم سراغ کتاب عوامل و نکاتی که توش گفتیم نائب فایل بعضی چیزها واقع ممشن. یک ولا یقع و ثانی باب تو باب علمتو باب, علمتو باب بود باب بلو. که مفعول اول و دومش در اصد مبتداغ و خبر بودن درست میگه نایب فائل هیچ موقع مفعول دوم باب تو واقع نمیشوند یعنی شما اگر داشتید علم تو زیدن آل من علم تو زیدن آل من اگر مجبور کنید کار اول که میکنید فایل رو حذف میکنید کار دوم فعل و سیغش رو تغییر میدی کار سوم مفهول رو باید بذارید جای فایل و مرفوعش کنید اگر مفغول اولا بسازید و بگید علم زیدون قائمه درست است ولی اگر مفغول سانی رو گذاشتید و گفتید علم آلمان زیدان بلد است مفغول سانی با و تو قادر به نایب فاید شدن چرا؟ آه چون چون اگر مفعول سانی رو گذاشتیم نایب فایل مفعول سانی میشه مصندانه دره چون نائب فایل و از طرفی چون خبر بود و اسنادش میدادیم به مبتده بود مصند یک چیز در آن واحد هم میشه مصند هم میشه مصندانه دره و این صحیح هر دو اصنادم تا پس بنابراین این مفعول باب باعلم تو این امکان رو دارد. ولا سالس باعلم تو ولا سالس باب تو سالس باعلم تو هم نمی‌دونه اعلم تو هارون علم تو بود که وقتی رفت به باب افعال یه مفعول بهش اضافه شد اعلم تو زیدا امرن کریما یعنی باوراندن به زید که هم چه غلط است چرا چون همون اشکال پیش میاد که چی؟ شی در آن واحد با هم هم مصنب و باشد و هم و این صحیح درخت خب ولا مفعول له مفعول له هم قادر به نائب شدن نیست مفعول له مصتری است منسوب مصتری است منسوب که بعد از فعل یا شبه فعل میاد و بیان علت اون فید رو میکنه بیان علت رو میکنه مثلا من میگم زربت تو زیدن تعدیبن زربت تو زیدن تعدیبن یعنی چی؟ یعنی زدم زید رو به خاطر عدب کردن آه؟ به خاطر عدب کردن زید رو من زدم ضرب تو زیدن تعدیبا این تعدیبا رو بهش میگن مفعولون چون مفعول له حالا خودش دو قسمه که مباحثش میاد اونو کاری به نداریم فعلا اینجا داریم مفعول له رو میگیم که نائب فاعل نمیم یعنی شما در ضرب و زیدن تعدیبا اگر تا را حذف کردید زیدو میتونید نا کنید که مفعول به اما تعدیب رو قادر نیست به دلی به دلیل اینکه نسب مفعول له منسوب بودن مفعول له بیانگر بیانگر علت فعله ما علت فعل رو از این میفهمیم که این منصوبه و مفعولون نه. اگر نایف شد و از نه افتاد دیگه بیان علت از فهمیده بگید بیان علت از او فهمیده و همین دلیله یعنی ما مفعولون لت رو نگاه میکنیم منصوب است و مفعولون لت علت رو میفهمیم حالا اگه معفوش کردیم و ناریفایل دیگه اون ازش فهمیده مفول لح قادر به ناریفاع شدن. وام مع مح رو تو عوامل خو، مفعول مع مفعولی است که بعد از واو میاد و همراهی ما بعدشو با ما قبلش نشون میده. مثل جهت و زی. دان یادتونه یعنی چی تو و یعنی اومدم با مفعول مع هم قادر به نایفائل شدن نیست چرا به دلیل که اگر مفعول معنای فاعل شد یا باید واوش رو بندازیم یا باید واوش رو نگه داریم اگر نگه داریم بین نایفائل چه <تصفيق> واو که یه چیز زائد یه چی شده فاصله کرد. ما همچی چیزی ندیدیم. اگر حذفش هم بکنیم که دیگه مبیت فهمیده نمیشه. پس بنابراین مفعول و معقادر به نای شدن نیست. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه واو او ایجاد اشکال میکنه حذف کنیم. دیگه مفعول و مفع خارج میشه از دایره بحث ما. ذکر کنیم نای فایل جدا میشه و نای فایل مثل فایله نباید به وسیله واوی چیزی جدا میشه این چیزی میادیم وسط فاصله مفغولون من هم قادر نیست پس چی؟ حالا غیر از این هایی که خوندیم حال و تمیز هم ایشون نگفته حال و تمیز هم نمیتونن نای فایل میشن حال و تمیز هم قادر به نایفاعل شدن نیستن حالا علتش رو هم فعلا کاری به کارش پس یه سری چیز ها نمیتونستان نایفاعلشن حال تمیز ها مفعول من مفعولنده درست شو و مسئول مطلق مسئول مطلق هم اگر مفهول مطلق باشه نمیتونه مفهول مطلق هم اگر مفهول و مطلق چی؟ باشه نمیتونه ولی اگر مفهول و مطلق باشه که عدد فعل ضربت رو بیان میکنه مثل ضربت و ضربته ای میتونه یا نو رو بیان میکنه مثل ضربت و ضرب شدیده اما اگر مفهول مطلق عددی و نوعی نباشه تأکیدی باشه مثل زربت و زربن کلم الله و موسا تکلیم ها اینطور باشه قادر به نایفایل شدن پس مفهول الله نمیتونه مفهول معنه نمیتونه حال نمیتونه تمیز نمیتونه مفهول مطلق تحکیدی نمی تونه ثانی و ثالث باب علم تو و علم تو هم نمیتونه. بقیه معمولات بقیه معمولات قادرند نایب فاعل شوند بقیه معمولات قادرن چی نایب فاعل شدن یعنی به میتونه نایب فایل بشه جارو و مجرور میتونه نایب فایل بشه ظرف میتونه تونه نائب بشه ها مفعول مطلقه عددی و نوعی می تونه نائب بشه درست اینا چیزاییه که قادرند بگی نائب فاعل خب اگر تو یه جمله الان مثلا یه جمله من خدمتتون بگم ضربتو زیدن ضربتو زیدن یومل جماعته زربتا زیدن یومل جماعته فیدارهی فیدارهی زربن شدیدن ذربتین زر بتاین <تصفيق> الان دقت کنید مفعول به داره کدومه ز ظرف زمان داره یوم <تصفيق> الجمعات ها حالا یدون پشتش بنویسید امام الامیر پشت اون یوم الجمعات بنویسید امام الامیر در جلوی امیر یا امام المسجد در مقابل مسجد فرقی نمیکنه میشه ظرف مکان ظرف زمان داره ظرف مکان هم داره جا و مجرور هم داشت کدوم بود فیداری آه. بعد ظرفا شدیدن مفعولا مطلق نوعی بعد ظرفتین مفعولا مطلق عددی خب همه اینها خادرن که بشن نایب فارد ولی دقت کنید اگر مفعول به در بین اینهایی که میتونن نائب فاعل بشن وجود داشته باشه اگر مفعول به باشه نوبت به دیگران نمیرسه یعنی مفعول به حت تو داره دقت کردین نه اگر مفع یعنی الان تو این جمله کی بعد نائب فاعلش واجب کدومه سه دیگه غیر از سه نمیشه اگه مثلا به جای ذرب تو زیدن بود مثلا فرض کنید فعل لازمی مثل قهد تو مثلا جلست تو فعل لازمی بود مفعول به هم بگید نداشت یا متعدی بود اما مفعول به از نشده بود اگر مفعول بهتر کلام نبود بقیه همه میشن مساوی بقیه همه میشن چی؟ مساوی. هر کدوم رو دلت خواست بکن نایبه فایل حالا یومل جماعت رو خواستی میگه یومل جماعت رفتش برو بشه درست چی گفتم در منولاتی که میتونن نائب فایل شوند اگر مفعولون به وجود داشته باشه واجبه که اون نائب فایل باشه. اگر نبود بقیه مساوی حالا این عبارتیشون ببین و یتعینر به له و واجب می باشد یه تعینو یعنی بیاجب بود. و واجب است مفعول به له برای این نایب شدن برای نایب شدن مفعول به واجب میشه. شه و یه المفعول به له فعیل نمی کن اگر مفعول به در کلام نبود فل و سوا پس بقیه جمعی آنچه که میتونه نای فالشه میکن چی؟ مساوی سوا همه با هم مساوی دیگه شخصی و شخص دیگر مقدم ممنوعات ممنوعاتو بذارید کنار اونهایی که جایزه یکیش مفلوم به اگر بود حق باوست اگر نبود بقیه میشن مساوی شد یا نه؟ آه خب این انمال نایبه باید. از سالث و رابع المبتدا و, و الخبر سالث و رابه مبتدا و مشخص مشابه ان مبتدا و خبر مبتدا و خبر بوم حالا مبتدا رو معنا میکنه مبتدا چند قسم بود دو قسم یک مبتدای اسمی یکی مبتداه وصفی اینا رو همه رو درسته حسابی گفتیم خدمت دو فالمبتده خوال مجلد و ان ال اوامل نفسیت مالو من نوشته کتابم اوامل نفسیت بلدی ان ال اوامل نفسیت اوامل مصوفه ان نفسیه صفتشه هوول مجرد و انه لعوامل نفسیت مبتدا عبارت است از اسمی که مجرد است از عوامل لفزی خالی از عوامل لفزی هر اسمی که خالی از عوامل لفزی میشه چی؟ مبتدا عامل لفزی روش نیست بس عاملش چیه؟ معنویه خود همین مجرد بودن از عامل لفظی باعث شده که او بتونه مرفوشه و مبتدا شده عامل ابتدایی خب مجرد و انقل لفظی میدیم خب میگیم مجرد از عوامل لفظی اگر مبتدا باشه فعر مزارم مجرد از عوامل لفظی میشه که ای در حالت رفعی و میشه چی؟ مرفوش اون هم مبتداست میگه نه مصندن علی به شرط اینکه چی شده باشه مصندن علی شده باشه و فعل قادر به مصندن علی شدن نیست پس چیزی که مجرد از عوامل لفظی است و در حالی که مصندن علیه مشخصه بهش میگن چی؟ مبتدا این مسندان الهی رو گذاشت دیگه فعل شو شد بگید خارج. این تعریف چی بود مبتدای اسمی بود درسته؟ مجرد بود از عوامل لفظی و مسندان الهی بود این مسندان الهی در واقع مبتدای وصفی رو هم چکای کرد خارج کرد. چون در مبتدای وصفی خود مبتدا مسند جمعه است مسندان الهی بگید مجرد از عوامل لفظی است اما مسند مزددن لای نیست حالا میاد یه تعریف برای مبتدای وصفی میکنه میگه چی او صفات الواقعتو یا صفت منظور از صفت چیه مشتق یعنی اسم فاعل اسم مفعول او صفاتو الواقعتو صفتی که واقع شده باشد بعد نفی او استفهامن بعد از نفی اومده باشه یا استفهام رافعتن لظاهرن و رفت بدهد به اسم ظاهر او حکمهی یا چیزی که در حکم اسم ظاهره چی بود در حکم اسم ظاهره؟ اونجا خوندم و من اضافه کردم تو که دا عوامل فقط اسم ظاهر رو گفته بود من یه چیز دیگم اضافه کردم مثال همونم برای دیم چی بود؟ زمیر بارس گفتیم رفت بدهد به اسم ظاهر یا به زمیر بارس مشخص زمیر مستتر نه زمیر رفتن لظاهر او حکمی اونجا من یک ای رو برای شما گفتم که اسم ظاهر چیز مبتدای وصفی با اسم ظاهری که بعد از خودشه گاهی اوقات هر دو مطابقت میکنن مثل اقا زیدون اقا زیدون یا انت، اقا زیدون یا بگید انت. این چند تا ترکیب داشت؟ دو دو تحکیب همشون به هلکه اینهای دفت الان خود دوباره من تکرار میکنم باز میکنید یادتون بوله نوشتی اونجا آه هنوز چیزی هم ازش نگذشتیم نباید یادتون بره ها اینجا داریم، هم من وقت هم تلف میشه هم شما، هم عمر هر دوت همون که باید حساب کردی یاد کنید هتشتای ساده ای هم از حفظیه و خانون‌ها در حفظ کردن یده طولایی دارن حفظ کردن براشون خیلی راحته و تو حرف زدن هم چیزی به قول معروف کم ندارن هر چیده نشون بخواد حرف بزن یعنی این‌طورن مباعثه کنن، بحث کنن جلب یه جایین که پرت پله بگن بشیند این‌ها رو به هم نگه بگن تا یاد بگن ها؟ واقعا این رو میگم ها؟ شما میتونید حفظ کنید وقتش هم دارید بیشتر شما حتی تو خونه تو مرزه تو اتوبوس میتونید به جایی که بشینید نگاه کنید چون اوتوبوس های از کشوری که نگاه کنید یارو تو یا توش خوابه یا داره مطالب اما مال ما که اینطور نیست مال ما همش رفت. الان الان من پاشم در برم بیرون شما پیش کنید میتونید نیستش که شاید الان میگویید کدوم نمیشه گویا همتون بودوش که بعضیاری میشه. آه. نیست که کتابشو شبو زارجنش مطالعه کنه یا در حد ضرورتش صحبت کنه. همهش رو میکنن باعث. در هر حال مطالعه کردنش یه چیز واجبیه. باید مطالعه کرد، حفظ کرد، ممارسات کرد تا اینا تو زن بمونه. اگر هم در زن نقش بس دیگه هست عصف... نمیشه. یه بار باید یاد گرفت همیشه بلد خب این دوتا ترکیب داره یکی اینکه قائمون قایمون بشه مبتدای وصفی و اون زید یا انته بشه چی؟ فائل و صد مسد خبر یعنی صد مسد خبر هم گفتیم یعنی اینکه که مصند تشکیل شده دیگه نیازه به خبر دوست. ترکیب دوم بگیم قائمون خبر مقدم زید مبتدای ماه که اسمی، آه، قائمون خبر مقدم زید مبتدای محقر. در صورت اول که معتاده وسیم میشه داخل قائمون زمیری مستتر نیست، چه زید باج. در صورت دوم که قائمون میشه خبر مقدم درش زمیره مستتر هست، که هول است. و برمیگرده به زد. بهش میگن رابط خبر به مبتدا مشخصه و میبینید این حباد رو عود میکنه به مرجع متأخر اما متأخر فقط در لفظ در رتبه زه چیه مقدمه چرا چون مبتداست است مبدده های ماخر. میگه فعین تابقت مفردن اگر مطابقت کنند اون صفت اسم مفردی رو که بعد از خودشه با اون مطابقت بکنه فوجه ها دو وجه در ترکیبش وجود داره نه و مثال حالا میخواد مثال بزنه این مثال برای اسمی است. این مثال برای اون قسمت و مجرد و عنه لعوامل لفظیت مصندن الهی این مثال اونه زیدون قاوم مثال برای صفتی که واقع شده بعد از نف یا استفهان و رفت داده به اسم ظاهر یا حکم اسم ظاهر و مطابق مفرد مثال میزنید اقا بعد از همزه استفهان ما قائمون بعد از چی؟ بعد از مایه؟ نافیه زیدان رو ور کنید؟ بگی چی؟ زیدان اقا یا ما قائمون زیدون یه مثال مثال برای کدومه؟ تا انتابقت مفردن فوجخان اگر مطابقت کنن با مفرد ما بعد خودش دوغش داره یعنی الان میتونید قایمون رو بگید خبر مقدم زید رو بگید ممتده ماخر بهش ممتده اسمی یا بگید قایمون ممتده وصفی زید چی؟ فاهم صده ما میگه اگر مطابقت کنن دو بچه اگر مطابقت نکنن میکن. یک بچه بیشتر جایست مثال برای جایی که مطابقت نکنن بزن حضرت آقا میگه چشم اقایمون یا ماقایمون از زیدان مثالاش تو همه ها این که اقایمون یا ماقایمون از زیدان زیدان رو بکنیم خب میشه قایمان چی؟ مبتدای وصفیه و از زیدان فایل حالا از زیدان نباشه از زیدون باشه فرقی؟ بگی نه نه. پس اگر وصف مفرد بود و اسم بعد تصنیع یا جمع یک ترکیب بیشتر جایز نیست اونم ترکیب مبتدای وصفی براشو؟ حالا اگر هر دو تصنیه بودن یا هر دو جمع مثلا گفتیم اقائمان از زیدانه یا اقائمونه از زیدونه اقائمانه از زیدانه یا اقائمون از, اقا از زیدونه اینجا چجوره؟ یک ترکیب بیشتر جایز نیست کدومه؟ خبر مقدم و مبتدای محقق یک ترکیب پیش چرا؟ چون اگه این مبتدای وصفی بود دیگه نباید تصنیه و جمع بسته شد پس معلوم شد مبتدای وصفی نیست پس مبتدای وصفی نیست خبر مقدم <تصفح> اقائمانه قائمانه خبر مقدم از زیدان مبتدای <تصفح> حالا شما بیدیرین به جای از زیدانه از انتما استفاده کنین که بشه در حکم اسم ظاهر درست شد؟ Can uh. I Allah Muhammad Allah kana